هر که در مجادله چوست، در معامل درست، بس قامت خوش که زیر چادر باشد چون بازخونی مادر مادر باشد.